مصله 21 آخر هفته دختر مسایلش را آورد و نگاه شد ویل چیزی به من یا کامیلا نگفت صبح شنبه چون نیتندیر کرده بود با لباس راحتی به بخش وری ساختمان رفتم تا ببینم ویل کاری دارد یا نه که او را دیدم داشت از راه رو می آمد. یک دستش کاسهی پر از غلات و دست دیگرش روزدامه بود با دیدن من سرخ شد فهمیدم چرا در صورتی که من رب دو بود و کاملا پوشیده بودم یادم میآید بعدش با خودم فکر کردم تا همین چند سال پیش چقدر عادی بود که صبحا دخترهای جوان را ببینم که از اتاقها به ویل بیرون می خزند نامه را بالا گرفتم و گفتم نامش آوردم هنوز بیدار نشده می صدش صداش بستش را روی سینه گذاشت و خودش را در پناه روزنامه قرار داد بلوز و شلوار تنش بود شلوار از نوع گلدوزی شده بود که معمولا در هنگ کنگ پای زنان میبینید نه اگه خوابید کاریش نداشته باش بزار بخوابه وقتی موضوع را به کامیلا گفتم کما میکردم خوشحال میشود، چون وقتی این دختر زندگی مشترکش را با دوست پسرش شروع کرده بود، کامیلا بچجوری ناراحت شد. ولی کامیلا اولش کمی تعجب کرد، بعد از حالت چهرش پیدا بود به عواقب به نامطلوفش میاندی حرف زیادی نزد و من کاملا مطمئن بودم لویزا کلارک را دوست ندارد. واقعا معلوم نبود چه کسی این روزها مورد تایید کامیلاست، ظاهرن که روی دنده مخالفت بود ما هرگز نفهمیدیم که در نهایت چه عاملی باعث شد لویزا به آنجا نقل مکان کند ویل فقط گفت مشکلات خانوادگی هر وقت ویل با لویزا کاری نداشت دختر سرش را با کارهای خانه گرمی کرد می و می رفت. چپ و راست به آجانس مسافرتی زنگ می و می کتابخانه. در هر نقطه از شهر که می فوری می شناختم چون قیافش از دور داد میزد. کسی مثل او ندیده بودم که اینطور طور رنگ های جیخ بپوشد، لباس‌های با انباه و اقسام زیور آلات می و کفشش همیشه ظاهر عجیب و غریبی داشت. به کامیلا گفته بودم که این دختر به خانه روح داده است، اما بیشتر از این نمیشد، چون این اظهار نظرهایی به کامیلا کرد. میدانستم ویل به لویزا اجازه داده است که از کامپیوترش استفاده کند ولی لویزا قبول نکرده و ترجیح داده بود به کتابخانه برود. نمیدانم دلیلش چه بود؟ شاید نمیخواست که ما ببینیم امتیاز گرفته است. شایدم نمیخواست ویل ببیند چه می‌کند. در هر حال وقتی لویزا حاضر بود ویل شاد و شنگول بود. که دوبار هم صدایشان را از پنجره باز اتاقم شنیدم و مطمئنم که صدای خنده ویل را شنیدم. با برنارد کلارک صحبت کردم تا مطمئن شوم از موضوع رازی است. گفت که به هم خوردن دوستی چندین ساله دخترش کمی ناراحت کننده بود، اوضا و احوال خانهشان هم پادر هوا بود. کلارک حتی به موضوع هم اشاره کرد که لوئیزا برای ادامه تحصیل اقدام کرده است. تصمیم گرفتم چیزی از این موضوع به کامیلا نگویم. نمیخواستم فکرش به هزار راه برود. ویل گفته بود که لو به مد و اینجور چیزا علاقمند است. لو غیافه بدی نداشت. اندامش خوب بود اما راستش را بخواهید چه کسی حاضر بود از آن و لباسهایی که او میپوشید بخرد. دوشنبه شب، لو از من و کامیلا خواست که با نیتن به بخش فری برویم. کتابچه راهنما، برنامه زمان بندی شده، مدارک بیمه و سایر چیزهایی که از اینترنت گرفته بود همه را روی میز گذاشته بود. برای هر کدام به ما یک نسخه آماده کرده و توی پوشه جداگانه گذاشته بود. همه چیز را کاملا مرتب چیده بود. گفت که میخواهد برنامه های سفر را به ما و ویل بگوید. لو قبلا به کامیلا یادآور شده بود که برنامه را طوري تنظیم میکند که خودش شرکت نداشته باشد اما وقتی داشت برنامه سفر را با جزئیات کامل شرح میداد و میگفت که چه چی چیزهایی را برای خودشان رزرو کردهاند، دیدم که قیافه کامیلا تغییر کرد و حالت قاطعی به خود گرفت سفری غیرعادی بود و شامل فعالیت های غیر معمول کارهایی که تصور نمیکردم، ویل قبل از تصادف هم انجام داده باشد هر باری که به چیزی اشاره می کرد کلک سواری در مسیر تندباد پرش با تناب کشی مدرکی مقابل ویل میگذاشت که نشان میداد مردان جوان آسیب دیده نخایی در آن شرکت کرده هند می اگر به هم بگویی باید همه اینها را امتحان کنم آن وقت خودت هم باید با من بیایی باید اعتراف کنم که با همه وجودم تحت تأثیرش قرار گرفته بودم واقعا که دختر خوشفکری بود ویل به حرفایش گوشتاد و مدارکی را که مقابلش گذاشت بررسی کرد سراخر گفت این اطلاعاتو از کجا به دست آوردی؟ دویزا افرو بالا داد و گفت ویل دوانستنه. و پسر من لبخند زد گویی به نکته زریفی اشاره کرده است دویزا بعد از اینکه به همه پرسشها جواب داد گفت هشت روز دیگه باید بریم خانم ترینر ماشیری که نیست این جمله را با لحنی چالش طلبانه بیان کرد گویی میخواست به کامیلا دل و جرأت مخالفت بدهد. کامیلا گفت اگه کاری هست که واقعاً مایل به انجامش هستید از نظر من هم بلا است نیتن هنوزم نظرت مساعده؟ مم. صد درصد ویل تو چطور؟ همه به ویل نگاه کردیم تا همین چند وقت پیش هیچ کدام از این فعالیت نیازی به فکر کردن نداشت گاهی همویل با گفتن نه که فقط برای ناراحت کردن مادرش بود کیف می کرد پسر ما همیشه همین همینطور بود و می‌توانست برعکس عمل کند فقط به این خاطر که نمیخواست کسی فکر کند دارد اطاعت می کند نمیدانم این اخلاقش به کی رفته شاید برای همین بود که معاملهگر ماهری بود و در کارش موفق ویل سرش را بالا گرفت و به من زل زد. هیچ چیز نمیشد از چشمانش خواند؟ حس کردم عضله صورتم منقبض شده بعد به لو نگاه کرد و لبخند زد. چرا که نه؟ بی صبرانه مشتاقم کلارکو که ببینم که خودشو توی آب آببرت میکنه. ماهیچه های دختر که منقبز بودند آزاد شدند. نفس راحتی کشید گویی به همان اندازه انتظار شنیدن جواب نه را داشت. مسخره است. اوایل که پای این دختر به زندگی ما باز شد نمیتوانستم اعتمادی چندانی به او بکنم. ویل به رغم همه هارتوپورت کردنهایش بسیار حساس و آسیب پذیر بود. برای همین نگران بودم که مبادا نشود با او کار کرد. ویل با وجود همه اینها جوان توانمندی بود اما وقتی آن آلیسیای کوفتی با دوست ویل رو هم ریخت ویل به شدت آسیب دید و حس کرد بی ارزش است کسی در وضعیت او نمی توانست حسی بدتر از این داشته باشد اما روزی که لویزا برنامه سفر را ارائه می کرد دیدم که چطور به ویل نگاه می کند. به طرز قریبی در چهرش حسی آمیخته به غرور و قدرشناسی شناسی وجود داشت و من به یک بار از ته دل خوشحال شدم که این دختر کنار ماست پسرم در سوسترین ترین موقعیت ممکن قرار داشت هرچند ما هرگز حرف از چون این چیزی نمی زدیم این دختر حالا هر کاری که داشت می کرد به زندگی ویل آرامش بخشیده بود هرچند اندک تا چند روز بعد جو خانه پرشور حال بود کامیلا امیدوار به نظر می رسید گرچه اقرار نمی کرد که این برنامه می تواند کاری از پیش ببرد پیامش را از نگاهش دریافت می کردم چی رو واقعا باید جشن بگیریم وقتی همه حرفها زده شد و همه کارها انجام شده صدایش را وقتی آخر شب داشت با جورجینا حرف می شنیدم داشت برای او دلیل و برهان می آورد که چرا قبول کرده است. جورجینا دختر همان مادر بود و دنبال این میگشت که ثابت کند لویزا میخواهد از موقعیت ویل بیشترین سود را ببرد و از او سو استفاده کند. کامیلا گفت: جورجینا خودش گفته که هزینه خودش را میدهد. نه عزیزم، گمون نکنم چاره جز این داشته باشیم. وقتی کمی داریم و ویل هم قبول کرده. من خیلی امید بستم فکر کنم تو هم الان باید همین کار را بکنی میدانستم دفاع از لویزا چقدر برایش سخت است حتی اینکه با او خوشرفتاری کند اما بردباری به خرش میداد، زیرا درست مثل من می دانست لویزا تنها شانس ما برای روی بخشیدن به پسر ما است حتی نصف نیمه واقعا لویزا کلارک تنها شانس ما برای زنده نگه داشتن پسر ما بود گرچه ایش کدام به چون این چیزی اشاره نمی کردیم. شب قبلش رفتم و با دلا دل چیزی نوشیدم. کامیلا هم رفته بود پیش خواهرش. برای همین منو دلا پیاده برگشتیم. همینطور که داشتیم قدم زنان از کنار رودخانه میگذشتیم گفتم قرار است ویل برود سفر. دلا جواب داد او چه عالی؟ تفلکی دلا میدیدم که با خودش کلانجار می رود تا مقابل حس قریزیش بایستد و چیزی در باره آینده ما نپرسد. این پیشرفت غیر منتظره، چه تأثیری بر آن میگذاشت اما من فکر نمیکردم بتواند خودش را نگه دارد و چیزی بپرسد تا وقتی مسئله حل می‌شد، و او جوابش را میگرفت قدم میزدیم و را تماشا میکردیم به مسافرهایی که زیر نور غروبگاهی سوار بر قایق شلب شلب میکردند لبخند میزدیم دلا از ویل می گفت و اینکه چون این سفری میتواند تواند برایش فاقلاده باشد و یاد بگیرد چگونه با شرایتش کنار بیاید. این حرف از بزرگ باریش بود. چون من از جنره هایی می دانستم که قاعدتاً باید دوست داشته باشد موضوع تمام شود. با تصادف ویل بود که نخشه های من برای آینده و زندگی مشترک نخشه براب شد. لابتع قلبش میخواست روزی وظایفم نسبت به ویل به پایان برسد و من آزاد شوم کنارش قدم میزدم و دستش را در خم آرنجم حس میکردم و به صدای آهنگینش گوش میدادم نمیتوانستم حقیقت را بگویم حقیقتی که ما پنج نفر میدانستیم اگر این دختر شکست میخورد و کاری از مزرعه و پرش با تناب کشی و وان آب و این جور چیزها بر نمیآد طوری رقم میخورد که به رهایی من می انجامید. چون تنها در یک صورت بود که خانوادم را ترک میکردم و آن در گذشته ویل بود. ویل همچنان مصر بود به این مکان جهدمی توی سوئیس برفت. من میدانستم کامیلا هم میدانست. با وجود اینکه هیچ کدام به روی خودمان نمی آوردیم فقط در صورت مرگ پسرم بود که آزاد می شدم و می توانستم زندگیم را بر وفق میلم پیش ببرم دلا که احساساتم را درک کرده بود گفت نه دلای عزیز می توانست بگوید در ذهنم چه می گذارد حتی وقتی هم خودم نمیدانستم. دلا گفت، استیون خبر خوب است واقعا حتما متوجه شدی که چون این چیزی میتواند برای ویل شروع زندگی مستقل باشد. دستم رو روی دستش گذاشتم، آنقدر شجا نبودم که افکارم را نزدش بیرون بریزم. یک مرد شجا مدتها قبل به او اجازه رفتن میداد، حتی به زن خودم. لبخندی زورکی زدم و گفتم با توست بیا امیدوار باشیم ویل با داستانهایی از تنابه بکشی یا هر هیجان دیگری که جوانان دوست دارند برای هم تعریف کنند برمیگردد. گردد دلو با آرنج به پهلویم زد و گفت بادارت می کند یکی توی قلعه کار بگذاری گفتم کلک سواری در مسیر تنداب توی خندق برای تابستان آینده جزب برنامه های احتمالی میگذارم. همینطور که به این موضوع دور از ذهن فکر می کردیم و هر از گاهی پیش خود می تمام راه تا آشیانه قایق را پیاده رفتیم بعد می زاتور